پزشکی قانونی درست پشت دادسرات و خیابان مرچند بود وارد پزشکی قانونی که می شدم، زن جوانی را دیدم که زاری کنان بیرون می آمد کت خستنش بود و به نظر می رسید از آن زنی که های پر ناز و عدای پرزرگ و برق باشد موهای بلند کوتاهی داشت بینی کشیده و دهنی خوشحالت آخرین ماجران با میبل بود بعدم به این ماجراها خواهم پرداخت وقتی که دیگر هیچ درد سری در کار نباشد مطلقاً هیچ درد سری صفر بلونده در حالی که از پله‌ها پایین میآمد نگاهی به من انداخت طوری نگام کرد که انگار میشناسدم اما حرفی نزد فقط به آه ناله ادامه داد پشت سرم رو نگاه کردم ببینم شاید کس دیگری هست که زنک نگاهش متوجه او بوده اما فقط خودم آنجا بودم و بنابر این نگاه او متوجه من بود عجیب بود. برگشتم و دور شدنش را تماشا کردم کنار جدول پیاده رو ایستاد و یک کادیراک لیموزین مدل لاسال سیاه شانزده سیلندر با راننده مخصوص جلوپاش ترمز کرد و خانم سوار شد ماشین انگار از قیب آمده بود آنجا نبود و یک هو آنجا بود ماشین که داشت دور میشد بلنده از پشت شیشه به من زل زده رانندش یک آقای خیلی پت و بود که از ظاهرش شرارت می‌بارید. صورتش تو مایه ی جک سی بود و گردن کلوفتی داشت طوری به نظر می رسید که انگار خیلی حال می کند ده دور با مادر بزرگتان روی رین برود اما حواسش هم باشد که مادر بزرگ مبارزه را تا آخر تا بیاورد بعدش می توانید مادر بزرگ را توی یک بانکه بریزید و به خانه برگردانید لیموزین که راه افتاد طرف برگشت و لبخند گل و شدی تحویلم داد انگار که رازی بین ما بوده رفقای قدیمی یا همچه چیزی قبل از آن هرگز او را نریده بودم خصوصی رفیق شفیقم در پزشکی قانونی پاچوبی را تو اتاق کالباد شکافی پیدا کردم خیره به بانوی مرده ای که روی میز سنگی آرامیده و پیدا بود که چشم انتظار لحظه کالباد شکافی خود است فرصتی که در دنیا فقط یک بار نصیب آدم می شود زن خوشگلی بود اما مرده بود گفتم واسه این کار خورده پیر نیستی پاچوبی گفت اوه خصوصی تو هنوز از گشنگی نمردی منتظر بودم نشه تو تحویل بگیرم پاچوبی همیشه خصوصی سدم میزد. مختصر کاراگاه خصوصی بود. گفتم شانس داره بهم رو میکنه. یه مشتری پیدا کردم. پاچوبی گفت: "با است. من روزنامه صبح خوندم و ندیدم چیزی راجع به فرار هیچ دیوونه‌ای از دیوونه خونه های این اطراف نوشته باشه. طرف چرا تو رو انتخاب کرده؟ تو سانفرانسیسکو کارگاه‌های واقعی هستن. اسمشون تو دفتر تلفن هست." به پاچوبی نگاه کردم. و بعد به جسد زن جوان زن زمان زندگیش خیلی سیبا بوده اما حالا مرده مرده به نظر می رسید گفتم فکر کنم اگه چند دقیقه دیرتر اومده بودم تو الان حالا روز دیگه ای داشتی پاچوبی لبخندی زد و دوباره نگاه تحسین آمیزش به فاهشه مرده را پی گرفت آهی کشید و گفت ها... یه ای کل ای با نخص تنها یه سوراخ ده سانتی تو پشتشه یه نفر یه نامه بازکن رو تپونده بهش واقعا که شرمآوره پرسیدم با نامه بازکن سوراخش کردن چیزی تای ذهنم سوسو زد اما نفهمیدم چی؟ قضیه یک جورهای آشنا به نظر می رسید آره از خانمایی نیمه شب بوده دم در یه خونه پیداش کردن حیف از این همه استعداد گفتم تو تا حالا با یه زن زنده هم تو تخت بودی؟ مادر چی فکر میکنه اگه به فهم سرد تو اینجور کار هست؟ مادرم فکر نمیکنه. داره با پدرم زندگیشو میکنه. چی میخوای خصوصی؟ میدونی که سابقت اصلا تعریفی نداره. اما اگه جای خواب میخوای یه تخت خالی پایین پله ها تو سردخونه هست. منتظرته. یا اگه بخوای میتونم همینجا درازت کنم. با سر به یخچال مخوفی اشاره کرد که توی دیوار کار گذاشته بودند و جای کافی برای چهار تا داشت. بیشتر جسدها را طبقه پایین توی سردخانه نگه می داشتند. اما موارد خاص را به اتاق شکافی می میآوردند ممنون ولی من خوش ندارم وقتی خوابم یه آدم منحرف زل زده باشه به هم پاچوبی پرسید خب با یه قهوه چطوری میخوری گفتم البته رفتیم سمت میزش که گوشه گوشه اتاق کاربت شکافی بود یک اجاق روی میزی داشت از توی قوری قدری قهوه برای خودمان ریختیم و نشستیم خوب خصوصی بریز بیرون تا که نیمدی اینجا پنجاه دلاری رو که از من قرض گرفتی پس بدی نه خودش جواب داد که نه یک یهقللب قهوه خوردم تمش افتضاح بود خواستم این را بگویم اما نظرم عوض شد گفتم من چند تا گلوله لازم دارم پاچوبی گفت او پسر دوباره بگو یه پرونده اومده زیر دستم یه مشتری پول نقد دوکاره اما شرطش اینه که اصله همرام باشه. گفت تو اصلاحه دست بگیری؟ این از اون کار خطرناک نیست؟ گفتم من تو جنگ بودم. من یه سرباز بودم. مجروح شدم. من یه قهرمانم. مزخرف نگود. تو واسه اون کمونیستای لعنتی تو اسپانیا جنگیدی و گله به ما تحتت خورد. لیاقت هم همین بود. حالا چی شد که گله به ما گرفت؟ گفته رو به موضوع اصلی برگرداندم. وقت نداشتم همه ی روزم را با این یاروز سر به سر بگذارم گفتم من شیشتا تیر لازم دارم هم خالیه گمون نکنم مشترین بخواد کارگاهی را استخدام کنه که اسلحه خالی همراش راش میبره تو اینجا یه اسلحه واسه اون جنازه هایی که بلند میشن و با تبر دنبالت میفتن نگه نداشتی؟ پاچوبی گفت این تو بلند نکن دروبرش را نگاه کرد هرچند کس دیگری در اتاق نبود. توسیهٔ گروهبان رینک را خیلی جدی گرفته بود که درباره ماجرای آن قاتل تبر به دست هیچ حرفی نزند من از معدود آدم هایی بودم که او ماجرا را براشان تعریف کرده بود ما دوستان خیلی نزدیکی بودیم تا اینکه من شروع کردم به پول قرض کردن از او و غرضم را هم نتوانستم پس بدهم هنوز هم با هم دوست بودیم اما او پولش را میخواست برای همین دیوار کوتاهی بین من و او فاصله انداخته بود غذیه جدی نبود اما به هر حال مطرح بود گفتم خب آره هنوز دارمش دنیا رو چه دیدی حالا چند تا گلوله بهم قرض میدی شش تا باشه ردیفه اول دهت دهتا تا ده تا میگرفتی بعدش پنجتا پنشت تا پنج تا بعدش یکی یکی حالام تیرایون اون هفتیر کوفتی رو میخوای تا آخرشی تو یه بازنده‌ای یه بازنده‌ای واقعی گفتم منو میدونم ولی من چند تا گلوله لازم دارم اگه به هم نرسونی تا بتونم برم پی اون کار اصلا چطوری میتونم پول تو پس بدم؟ پاچوبی بفهمی نفهمی رو ترش کرده بود گفت گندت بزنه اما همه نمیدم به تو سه تاشو نیگر میدارم واسه خودم تا اگه باز دوباره یه ماجرای عجیبی اتفاق افتاد به کارم بیان گفتم تو هنوز فکر میکنی اون ماجرا واقعی بوده؟ ها؟ پاچوبی گفت حواست باشه خصوصی نگاه دیگری به بر اتاق انداخت. باز هم فقط خودمان بودیم. کشای میزش را با احتیاط بیرون کشید. و روولور را رو کرد. خشابش را باز کرد و تا تیر درآورد و داد به من. بعد هم از را گذاشت کنار. گفت. سگ خور. به تیرهایی توی دستم نگاه کردم. چشمم به آنها خیره منده بود. گفت. باشگر چیه؟ گفتم. کالیبر اینا چنده؟ سی گفتم کندش بزنه کالیبر 38 پاچوبی گفت تا کالیبره سی داری درسته؟ کجا میدونی دونستنش کار سختی نیست میشناسمت گفتم حالا چی کار کنم چرا سر یه کاری نمیری عالم و آدم دارن کار میکنن کار که آر نیست گفتم ولی من یه مشتری گیر آوردم یه مشتری واقعی تو قبلا مشتری داشتی و قبلا هم عذرتو خواستن چه شو تو فکر رفیق تو اصلا به درد این شغل کارگاه خصوصی نمیخوری من خودم اگه زنم داشت سرم و شیره می و می بفهمم با کی رو هم ریخته قبل از اینکه سراغ تو رو بگیرم پیش دانالدک داک رفتم گوی اینکه که من اصلا زن نگرفتم حالا تو چرا نمیری واسه اون هفتیر کوفتی چند تیر بخری گفتم هیچی پول ندارم اینقدرم نداری که چند تیر باش بخری لعنتی همش یه دلار. یه دلار رو خورده ای گفتم شه گفتم دوره گفت گمونم تنها دوره خوشی تو که من دیدم همون پارسال بود که ماشین بهت زده بود بعضی حالیشون نیست که با ماشین به تو زدن و جفت با آتو شکستن واسه تو شکستم واسه تو خوش وقتیه. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ پاچوبی سرش را تکانداد و لبخند از باری زد. کشوی میز را بیرون کشید و هفتیرش را درآورد و توی دست من گذاشت و گفت اگه یه مرده غریبه به زندگی برگشت و وقتی داشتم صورتشون میشستم یه و خفتم و چسبید رو پای توی لعنتی مینویسم و میام هر جا باشی گیرت میارم یه شب خواب راحت واست نمیذارم میکشم پایین و سرت و پاتو رنگی میکنم از کردن پشیمونت میکنم اسلحه رو توی جیب کتم گذاشتم تابه ها رنگ اسلحه به خودش ندیده بود گفتم یک دنیا ممنون پاچوبی تو رفیق باوفایی هستی پاچوبی گفت تو هم یه آشغال تمومی میخوام فردا صبح اون اسلحه اینجا سر جاش باشه گفتم ممنون یک حفتیره پارتوچی من بود و احساس یک کارگاه خصوصی واقعی رو داشتم پختاش به روی من لبخند میزد راه پیش رفت پیش رو پاچوبی تا دم در اصلی همراهیم با اینکه یک پاش چوبی بود تند و با وغار راه میرفت قضیه را قبلا نگفته بودم فکر نمی کنم گفته باشم باید میگفتم در نوع خودش جالب توجه هست مردی با یک پای چوبی که کار مراقبت از مورد ها را عهده داره همان وقت یاد نکته افتادم که باید از او سوال می کردم گفتم پاچوبی تند بلنده رو دیدی که همین یه ساعت پیش از اینجا میرفت بیرون. موهاش کوتاه بود یک کت خز داشت و واقعا خوشگل بود گفت آره اومده بود دیدن یکی از مشتریای من همون خوشگله که یکی چون حوصله نداشته صبر کنه اونو جایی نامه سر صبحش باز کرده گفتم چی؟ همون نامه باز کن دیگه پرسیدم تو گفتی نامه باز کن؟ آره همون دختری که با نامه باز کن کشتنش به واسه دیدن اون اومده بود گفت فکر کرده شاید دختره خواهرش باشه خبراتو روزنامه خونده بود اما دید که این یه دختر دیگه است گفتم پامزه است از در که میرفت بیرون داشت آبقوره میگرفت گفت من هیچی رو به اون نمیدونم الا اینکه وقتی از پیشم رفت آهو ناله تو کارش نبود خیلی بی احساس بود یه تیکه یخ نام باز کن حالا داش یادم می گروپان رینگ داشت با همان نام بازکنی باسی می کرد که این دختری را که آب از لب و لوچه پاچوبی را انداخته بود، با آن کشته بودند. بار اولی که پاچوبی اسم نامه بازکن را آورد، چیزی تای ذهنم سو, سو زد. پس قضیه این بود. نام بازکن همان آلت قطاله بود. فکر کردم، مجموعی از حوادث ظاهران همخوان بدون هیچ دلیل خاصی، اما اینها هیچ ربطی به من ندارند. یادت نره هفتی رو فردا صبح برش گردونی پاچوب این را گفت و چوب, چوب پا به داخل پزشکی قانونی برگشت رئیس من یک هفتیر پر دارم. ظرف چند ساعت می توانستم با گام های استوار به ملاقات مشتری ها بروم. هنوز نمیدانستم چه درخواستی از من دارد که برای انجامش باید اسلحه داشته باشم. آه خب گدارا چه به چانه زدن. من واقعا به پول احتیاج داشتم. دست داشتم پنجاه دلار بابت هزینه های جاری بگیرم. این می توانست شرایطم را به شکل چشمگیری عوض کنم می توانستم چند دلارش را خرج زن صاحب خانه کنم تا دست از سرم بردارد. فکر نمی کردم داستانی که درباره باره چاهای نفت رودایلند سرهم کرده بودم خیلی توان بیاورد. فکر آن وقتی بودم که با آپارتمانم برمیگردم و زنک مثل مادر فولات زره صداش را به سرش می کشند. مدتی وقت داشتم که باید یه جوری تلف می کردم. برای همین راهی خیابان منتحی به میدان پورتزموز شدم. روی نیمکتی نزدیک مجسمه تقدیمی به رابرت لویز استیونسون نشستم. توی پارک یک عالم چینی در رفته آمد بودند. مدتی مشغول تماشاشان شدم. آدمهای جالبی بودند. خیلی پر نشاد. نمیدونم هیچ وقت کسی به آنها گفته بود که شکل ژاپنیها هستند. و الان اصلا وقت مناسبی برای شکل ژاپنیها بودن نیست. یا نه؟ البته این دیگر هیچ ربطی به من نداشت. چون من دوران جنگم را سپری کرده بودم. خودم اینطور فکر میکردم روی نیمکت پارکی در سانفرانسیسکو نشسته بودم و دنیا را به حال خودش رها کرده بودم من یک هفتیر پر توی جیب و یک مشتری منتظر داشتم که میخواست در ازای خدماتم به من پول بدهد دنیا آنقدرها هم همجای بدی نبود برای همین شروع کردم به فکر کردن درباره بابل چرا که نه تا دو ساعت دیگر هیچ کاری نداشتم بکنم ضرری نداشت فقط باید خیلی موازه به رؤیای بابل باشم نباید اجازه دهم بر من مسلط شود من باید بر آن مسلط باشم این کاری است که باید بکنم به بابل نشان میدهم رئیس کیست؟